891. تاجر حق باز که فهمید علایدین اطلاعی از نقره و جواهر ندارد علاقه و کنجکاف شد که اگر باز هم از این بشقاب ها دارد او حاضر است آنها را خریداری کند علایدین هم روی بی اطلاعی یازده بشقاب دیگر را به همین تاجر فروخت و یازده سکه طلا در برابر آن دریافت کرد او با این پول مدتی هزینه زندگی را تعمیم کرد زمنان در رفت آمد به بازار با چندین بازرگان آشنا شد اما مانند گذشته باز با همسالان خود در کوچه به ولگردی میپرداخت تا آنکه همه پولهایی را که از فروش بشقاقها به دست آورده بود خرج کرد هنگامی که علا ایدین کاملا پول شد سراغ چراغ جادو رفت و آن را با پارچه مالش داد و فورا جن با آن هیکل تنومند نمایان شد و پرسید چه امری داری تا انجام دهم علایدین گفت من گرسنه هستم جن ناپدید شد و بعد از یک لحظه دوازده بشغاب نقره انباشته از غذاهای لذیذ آماده کرد و خود ناپدید شد وقتی مادر علایدین به خانه آمد حیرت کرد که آن همه غذای خوشمزه در سفره چیده شده است با علایدین بر سر سفره نشست و تا آنجا که میتوانست از آن غذاها خورد و باقی مانده آن را هم سه روز دیگر استفاده کردند نگامی که علایدین متوجه شد همه ی خوراکی ها تمام شده است یکی از بشقاب های را به بازار برد تا به همان تاجر دورگرد بفروشد اتفاقا مرد زرگری که در دقا نشسته بود و بشقاب را در دست علایدین دید او را صدا زد علالدین به دکان او رفت رافابوشقاب را به او نشان داد. زرگر که مرد درستکاری بود به علالدین گفت: ایار نقره تو بالاترین ایار هاست. بعد آن را وزن کرد و گفت شست سکه طلا ارزش دارد. آن وقت علالدین فهمید که آن تاجر او را فریب داده و از بی اطلاعی او استفاده کرده است. علالدین بشقاب را زرگر داد و شست سکه طلا گرفت. او از جاستگرداری زرگر تشکر کرد و تمام بشخابها را به او فروخت و پول فراوانی به دست آورد. علایدین با این ثروت و با مادرش که با همان آیدی حاصل از دوکریسی قناعت می کرد چند سالی را به راحتی زندگی کردند او که پول کافی به دست آورده بود بیشتر به بازار می رفت و با بازرگانان تماس می گرفت با بازرگانان عمده پارچه های زربفت و با کاله های آشنا می شد. زمنان متوجه شد میوه های رنگی که با خود آورده بوده است جواهرات گرانبههایی هستند که قیمت بسیار بالایی دارند در حالی که تا آن لحظه فکر میکرد آنها شیشه های رنگی هستند اما علایدین در این باره چیزی به مادر خود نگفت روزی علایدین در خیابان عبور میکرد و جاچی جارزر که دختر سلطان میخواهد به گرمابه برود و همه ی دکان ها باید بسته شوند. و رخ و هم به خانه های خود بازگردند نام دختر سلطان بدرالبدور یعنی ماه ماهان بود این دختر بسیار زیبا بود و علا هم بسیار کنجخاف بود که هر طوری هست این دختر را ببیند بنابراین تصمیم گرفت که به در گرمابه برود و در کنجی پنهان شود که صورت زیبایی دختر سلطان را ببیند علا خود را به گرمابه رسانید و در گوشه ای آماده نشست و همین که دختر سلطان نقاب از چهره برداشت واقعا قُرص ماه را دید که از زیر عب بیرون آمده است از همان لحظه مهر او در دلش جا گرفت و از گرماب بیرون آمده به خانه رفت شب را تمام در فکر بود و یک کلمه با مادرش صحبت نکرد و به پرسش های او هم پاسخی نداد مادرش سبب تغییر رفتار او را جویا شد علای این ماجرا را برای مادر بیان کرد و از مادر خواهش کرد که به خواستگاری او برود مادر علایدین گفت مگر دیوانه شده ای؟ او دختر سلطان است و تو سر خیات فقیری که از مال دنیا چیزی نداری این فکر را از ذهن خود خارج کن علایدین در پاسخ مادر گفت من دیوانه نیستم و عاشق شاهزاده بدرال بدور هستم و به هر قیمتی شده باید با او ازدواج کنم و از شما خواهش دارم موجبات ازدواج برا فراهم کنید وگرنه من خود رو خواهم کشت مادر علایدین از سخنان او بسیار ناراحت شد و پاسخ داد پسرم درست است که من مادر تو هستم و حاضرم همه گونه فداخوری برای تو بکنم ولی باید واقعیت رو هم در نظر گرفت تو باید با کسی که همشن و همپایی تو باشد ازدواج کنی نبا دختر سلطان مملکت تو قدر بیشتر فکر کن آخه چگونه ممکن است که یک فرد عادی فقیر مانند مادرتو نزد سلطان مرود و از حضور سلطان خواستگاری دخترش را بکند؟ آخه تو چه کار بزرگی را برای سلطان یا مملکتش انجام داده ای که انتظاری چنین مرحمتی داری؟ با اولین سخنی که از دهانم خارج شود مرا دیوان دیوانه خواهند نامید و مجازاتم خواهند کرد. علاوه بر این هرکس به حضور سلطان یابد؟ قبلا باید هدیه از به دربار تقدیم کند که این کار از عهده ما خارج است علایدین پاسخ داد مادر سخنان تو را قبول دارم اما من این شاهزاده را دوست دارم یعنی او را میپرستم و نمیتوانم در برابر او مقاومت کنم ولی فکر می‌کنم چراغ جادو و آن سنگهای قیمتی را که از زیرزمین با خداورده ام به جای هدیه به او تقدیم کنم و آن شیشه های رنگی یاران بهاتن جواهراتی است که شایسته بزرگترین پادشاهان عالم خواهد بود. من با بهترین جواهرات جواهر فروشها آنها را مقایسه کردم. جواهرات من چیز دیگری هستند که جواهر جواهرفروشان نمی‌توانند قیمتی برای آنها تعیین کنند. زیرا از لحاظ اندازه‌و وزیبایی مانند ندارند. تو یک مشقاب چینی داری. ما اگر از این جواهرات بیمانند انباشته می‌کنیم و به حضور سلطان می‌بریم. اطمینان دارم که با دیدن آن با پیشنهاد ما موافقت خواهند کرد مادر علایدین فوراً دو كیسهٔ جواهرات را نزد او آورد و آنها را در باشخاب چینی جای داد و تلعلو و باستاب نور روی آنها به گونهای بود که اتاق را روشن میساخت و مانند چراغ می‌درخشیدند و چشم را خیره میساخت مادر علایدین گفت فرزندم تردیدی ندارم که سلطان همچنین جواهراتی را ندیده است و این سنگ ها بهای بسیار دارد اما با وجود این می ترسم زیرا تو از خانواره بزرگان و شاهزادگان نیستی و سلطان درخواست مرا نپذیرد و مرا اگر ناامید سازد آنگاه چه کنم یا اینکه آنقدر خشمین گردد که مزاحمتی هم برایم پیش آورد و با شرمندگی و شکست به خانه برگردم و من و تو هر دو قربانی خشم سلطان شویم علاعدین که آتش اشخان شاهزاده سراسر سر وجودش را میسوزانید به این سخنان توجهی نمیکرد و مادر را مجبور کرد که فردا حتما به دربار سلطان برود مادر علایدین قبول کرد و به علایدین گفت هرگاه سلطان جواهرات را پذیرفت و با کمال آرامش و مهربانی از من پرسش کند فرزند شما چه املاک و اموالی دارد و آیداد او از چه محلی است و شغل او کدام است من چه پاسخی دارم که به او بدهم؟ علاءالدین پاسخ داد: مادر، ناراحت این گونه سوالات نشو. اولا هرگز چنین پرسشهایی مطرح نمی‌شود. ثانیاً بر فرض هم که مطرح شود، ما چراغ جادو را که مهمترین و نیرومندترین وسیله برای تأمین هر آرزویی است، در اختیار داریم؟ سرانجام مادر علاءالدین با سخنان او آرامش بیشتری یافت و آماده شد که به حضور سلطان برود. روز بعد بشقاب چینی انباشته از جواهرات درخشان را با دستمال مال و مادر علا روانه قصد سلطان شد. همه ی بلند پایگان مملکتی و درباریان به داخل قصد رفته بودند و مادر علا وارد تالار بزرگی گردید که بسیار با شکوه و بزرگ بود و او را به سوی اتاق کار سلطان که نخست وزیر و اعیان دربار با سلطان مشغول رسیدگی به کارهای مملکت بودند هدایت کردند. مادر علا مشاهده کرد که آنها مشغول کارند و مردم به ترتیب برای کارهای خود به حضور سلطان و وزیران او در جلسه بار میابند و بعد از رسیدگی به خواسته ها و شکایات مردم اختلافات آنها را پایان میبخشند. بعضی راضی و بعضی ها از اتاق کار سلطان بیرون می‌آیند. بعد از چندین ساعت وزیران و نخوص وزیر و عیان درباری از حضور سلطان مرخص شدند. و خود سلطان هم به قصر اختصاصی مراجعه کرد مادر علا با خود گفت بهتر از روز دیگر به دربار بیاید و با بشقاب جواهرات به خانه خود مناجعه کرد علا که دید مادر با همان به جواهرات به خانه آمده تعجب کرد و علت بازگشت را با جواهرات از مادرش جویا شد مادر علا گفت بدون هیچ ایرادی به من اجازه ورود دادند و سلطان را دیدم که با حوصله فراوان به کار مردم رسیدگی می کرد و مردم برای انجام کارهای خود نزد او میآیند. من دیدم سلطان خسته شده است و نخواستم مزاحم او بشوم. این بود که مراجعت کردم و فردا دوباره به حضور سلطان خواهم رفت. روز بعد مادر علایالدین دوباره به دربار رفت و مدتها صبر کرد و عاقبت بدون ملاقات سلطان به خانه بازگشت. و شیش روز به همین ترتیب به قصد دیدار سلطان به دربار رفت و به نتیجه مراجعت کرد تا آنکه متوجه شد کسانی که شکایتی یا عریضه ای داده اند و یا کسانی که به آنها وقت داده شده می توانند به حضور سلطان بار یا و مادر علایدین جزو هیچ کدام از دو دسته نیست در یکی از روزها که مادر علایدین وارد دربار شد زمانی بود که به شورای سلطان با وزیران به پایان رسیده بود. و سلطان به قصر اختصاصی خود رفته بود سلطان به وزیر گفت «اینک چند روز است که من زنی را میبینم از اول وقت که من در شورا شروع به کار میکنم تا پایان شورا در گوشه ای میستد و چیزی در دست دارد که رویش را با پارچه پوشانده است آیا میدونید او چه تقاضایی دارد؟ وزیر که از موضوع کاملا بیعتلا بود به سلطان پاسخ داد شاید عریضه یا دارد.» از این گوره نمونه ها زیاد داریم سلطان که به این پاسخ قانع نشده بود دستور داد اگر بار دیگر این زن به اینجا آمد فوری به آگاهی من برسانید نخست وزیر هم دست سلطان را بوسید و گفت اطاعت می کنم روز بعد وقتی سلطان میخواست به کار روزانه بپردازد مادر علایالدین را دید که مانند هر روز در گوشه ایستاده است فوراً ملخس وزیر گفت این زن را به حضور آورید فورا مادر علایالدین را به حضور سلطان آوردند مادر علایالدین زمین ادب را بوسید و منتظر ماند تا سلطان به او اجازه داد از روی زمین برخیزد آنگاه سلطان پرسید چه خواهی؟ مادر علایالدین به عرض رسانید که من درخواستی دارم و چون درخواست من ممکن است غیر عادی به نظر سلطان آید اول به من امان دهید که جان من در خطر نیفتد سلطان گفت در امان هستی در این هنگام مادر علاءالدین به عرض رساند من پسری دارم که نامش علاءالدین است و عاشق شاهزاده بدرالدور شده است و صبر طاقت خود را در راه عشق او از دست داده است به او نصیحت کردم که این فکر را از مغز خود خارج کند اما می‌گوید من حتما باید با شاهزاده ازدواج کنم و مرا مجبور ساخته به حضور سلطان بیایم و خواستگاری کنم سلطان با دقت بسیار به سخنان مادر علا توجه کرد و کمترین آثار خشم به قیافه او دیده نمیشد. سلطان رو به مادر علا کرد و پرسید این چیز که در دست خود نگه داشته ای. مادر علا در این هنگام بشخاب جواهرات را به سلطان تقدیم کرد و گفت این حدیه یه است که پسرم برای چاساد خانون فرستاده است. سلطان از دیدن جواهرات زیبا و بیمانند مانند ایدین حیرت کرد و به آنها خیره شد و گفت عجب زیبا و دانه های است. من در عمرم جواهراتی به این زیبایی بزرگی ام. واقعا قیمتی برای اینها نمیتوان تعیین کرد. آنگاه نخست وزیر را فرا و گفت در عمرت چنین جواهراتی دیده ای؟ وزیر مفهود و شکفت زده بود. آنگاه سلطان گفت این هدیه ی خوبی برای دختر من خواهد بود. از این جمله نخسوس به فکر فرو رفت که مبادا سلطان دختر خود را که قرار است به یکی از پسرهای او بدهد، اینک میخواهد به پسر این پیرزن بدهد. آنگاه نخست viz زیر گوش سلطان به آهستگی گفت: سه ماه فرصت دهید تا پسر من ی ازنده تری به حضور سلطان تقدیم کند. با وجودی که سلطان معتقد بود هدیه ی ازنده از این امکان پذیر نیست، رو به مادر علایدین کرد و گفت هدیهٔ شما را میپذیرم و تا سه ماه دیگر پسر شما باید لوازم زندگی ای برای شاهزاده تهیه کند آن وقت به اینجا بیایید عروسی صورت خواهد گرفت مادر علایدین با خوشحالی فراوان به خانه برگشت و خبر خوش را به آگاهی علایادین رسانید علایادین هم بسیار خوشنود شد ولی مدت سه ماه به نظرش سه قرن جلوه کرد. اما به هر حال سخن سلطان را معتبر میدانست و گفت: باید سه ماه دیگر صبر کنم. مادر علائین که برای خریدن نفت چراغ به بازار رفته بود مشاهده کرد همه جا چراغ و مردم در جشن و سرور هستند. از دکاندار پرسید: علت این جشن همگانی چیست و پاسخ شنید عروسی دختر سلطان با پسر نخست وزیر مملکت است. و هم عروس را از گرمابه به کاخ اختصاصی میبرند و به شاهانه با سواران برگزیده و تشریفات سلطنتی در انتظاری استاده همینکه همین که مادر علایدینی خبر را دریافت کرد با شتاب زیاد خود را به خانه رساند و علایدین را از ماجرا با خبر ساخت علایدین که در آتش حسادت میسوک از جای برخواست و در حالی که به سراغ جادو میرفت گفت مادر فکر نمی کنم شب دلخواهی برای پسر نخست وزیر باشد. تو شام را حاضر کن تا من ترتیب کار امشب را برای داماد و عروس بدهم. علایدین چراغ جادو را با انگشت خود نوازش داد و جن قولاسا فورا حاضر شد و گفت آماده خدمتم. علایدین به او گفت سلطان به من وعده ازدواج با دخترش را داده تا این که سه ماه دیگر با او ازدواج کنم. اینکه او به وعده خود وفا نکرده و ترتیب ازدواج دخترش را با پسر نخست وضعی داده است. از تو میخواهم که بستر عروس و داماد را با خود آنها به این خانه بیاوری. جن گفت امر شما را اطاعت میکنم. فرمایش دیگری ندارید. علایدین با اشاره سر جواب منفی داد و جن فورا ناپدید شد. علایدین هم به اتاق مادر رفت و با او شام کرد و به طور عادی به گفتگو پرداخت. تا آنکه مادرش رفت که استراحت کند او هم به اتاقش رفت و در انتظار نشست تا جن معمولیت خود را به انجام رساند از آن سو در سلطنتی مراسم برگزاری جشن زناشویی با تشریفات خاص برفا بود و همه جا را غرق نور کرده و ساز و آوازی به گوش میرسید و خاجه های درباری با لباسهای زیبا در رفت آمد بودند و میهمانان و بزرگان شهر درم بزم شاهانه شرکت داشتند تا آنکه شب به نیمه رسید و خوده باشی به داماد اشاره کرد که هنگام رفتن به خوابگاه عروس است و پسر نخوص به خوابگاه رفت و در انتظار شاهزاد خانم نشد بعد از مدتی در حالی که شاهزاده خانم توسط ملکه مادر و ندیمه های مخصوص بدرقه میشد به خوابگاه آورده شد مادرش او را بوسید و خداحافظی کرد داماد و عروس داخل بستر شدند در این هنگام جن بستر و هردوی آنها را در یک چش به هم زدن به خانه علایدین آورد. علا, علا که بی منتظر چنین فرصتی بود به جن گفت داماد را در اتاق کار زندانی کن و خودت هم فردا صبح اول وقت بیا نزد من. جن فورا داماد را با پیراهن وزیر جامعه به دفتر کارش برد و در آنجا او را زندانی کرد و با جادو او را بی حرکت ساخت. ادین در کمال ادب به شاهزاده خانم گفت ای شاهزاده زیبا من قصد بیحرمتی به شما را نداشته و فقط میخواستم رقیب عشقی خود را از صحنه خارج کنم زیرا من عاشق شما هستم و سلطان وعده ای ازدواج شما را به من داده بود اما پیمان خود را شکست و مرا مجبور به این رفتار کرد شما در اینجا ایمن و آسوده خواهید بود شاهزاده خانم که بی اطلاع بود از سخنان علا چیزی نمیفهمید و به همین دلیل هم ساکت ماند و توجهی به سخنان او نکرد اما علایدین لغت شد و به جای داماد وارد بستر گردید و شمشیر خود را بین شاهزاده و خودش جای داد و پشتش را هم به شاهزاده کرد و گفت با این شمشیر از حیثیت شما دفاع میکنم علایدین شب را به آسودگی خوابید ولی شاهزاده ناراحت بود صبح جنهازه شد و علایدین به او گفت داماد را به اینجا بیاورد و در کنار شاهزاده بگذار. سپس هر دوی آنها را با بستر شب عروسی به امارت اختصاصی قصب برگرداند در یک لحظه داماد در کنار عروس نمایان شد و جن هر دو را به ترتیبی که علایدین گفته بود به خاگاه سنتنتی برگرداند اما در این جریان شاهزاده جن را نمیدید و سخنان علایدین را هم نمیشنید. اما همانجا جا به جوشدن بستر بدون جهاد شاهزاده و داماد را به ترس شدیدی دوچار کرده بود. همین که عروس و داماد در جایگاه قبلی خود قرار گرفتند، سلطان برای دیدار دختر تازه عروسش به خوابگاه وارد شد و حال او را پرسید. اما برخلاف انتظارش او را خوش نود نیافت و هرچه با او صحبت کرد پاسخی از او نشنید. سلطان تصور کرد که شاهزاده از روی شند سخن نمیگوید. و او را بوسید و بیرون آمد سلطان نزد ملکه رفت و موضوع را با او در میان گذاشت ملکه پاسخ داد نوع عروسها تا دو سه روز بعد از عروسی همین طورند به هر حال من به دیدن دختر من خواهم رفت ملکه نزد شاهزاده آمد و او را بوسید و با او به گفتگو پرداخت ولی شاهزاده باز هم سخنی نگفت و همچنان افسرده بود ملکه از دخترش خواهش کرد که علت این نخوشنودی را بیان کند. آخر بعد سکوت را شکست و را که اتفاق افتاده بود بیان کرد. ملکه قند در حیرت بود و گفت چگونه امکان دارد که شوهر تو از روی بستر ناپدید شود و بعدا به جای او جوان دیگری نمایان گردد و خود را عاشق تو معرفی کند و به جای شوهر را در بستر تو بخوابد و شمشیری بین خودش و تو حائل سازد و هنگام صبح بستن شماها دوباره به قصد بازگردد حتما تو خیالاتی شده شاهزاده گفت اگر من خیالاتی شده از پسر نخست وزیر پرسش کنید ببینید او هم خیالاتی شده است ملکه گفت این افکار را از خود دور کن در سراسر شهر همه مشغول نواختن ساز و سرگرم جشن شادمانی هستند همه جا است. نباید این خوشحالی همگانی را برهم زد آنگاه ملکه ندیمه های ویژه خانم را فراخواند و گفت شاهزاده را تنها نگذارید سپس ملکه نزد پسر نخوز رفت و در شب پیش پرسش هایی کرد پسر که خیلی مایل بود داماری سلطان را حفظ کند با کمال احتیاط مطلب را از ملکه پنهان نگه داشت و گفت موردی برای این پرسش ها نیست ملکه هم به او گفت تو پسر بسیار عاقلی هستی. شادی و پایکوبی تمام آن روز ادامه داشت و ملک هم آنی شاهزاده را تنها نگذاشت و همه سعی می کرد شاهزاده را مشغول نگه دارد و انواع سرگرمیها را برای او فراهم می کرد. پسر نخست وزیر هم که مانند عروس از رویداد شب گذشته گیج بود برای حفظ دامادی سلطان حتی یک کلمه هم درباره باره یه واقعی دیشب سخن نگفت علاید میدانست که می دانست بسر عروس و داماد چه است. امشب هم قبل از که عروس و داماد و بستر روند جن را احضار کرد و از او خواست مموریت شب قبل را تکرار کند جن هم مانند شب گذشته بستر عروس و داماد را به خانه ی منتقل کرد و داماد را در اتاق دیگری زندانی کرد شاهزاده خانم باز متوجه شد که همان جوان دیشبی لخت شد و به بستر آمد و شمشیر را بین او و خودش در داخل بستر گذاشت هنگام صبح شاهزاده داماد را در بستر یافت و لحظه بعد بستر را در قصر سلطان دید و پسر وزیر هم در کنار او در بستر دراز کشیده بود سلطان که از وضع حال دیروز دخترش نگران بود آن روز صبح دیدن او رفت و او را بوسید و حالش را پرسید باز با بی حرفی او را برو شد سلطان این بار نتوانست بر خشم خود چیره گردد دست به شمشیر برد و فریاد کرد اگر حقیقت را به من نگویی همکنون سر از بدنم جدا میسازم. شاهزاده که فاقلاده ترسیده بود تمام ماجرای هر دو شب را برای سلطان تعریف کرد سلطان شگفت زده با خود فکر کرد چگونه این وقایی خود به خود واقع شده است؟ باید کاسه زیر نیم کاسه باشد آنگاه دخترش را سرزنش کرد که چرا دیروز این ماجرا را تعریف نکردی؟ من تو را به همسری پسر نخست درآوردم در آوردم. که خوشبخت شوی و زندگی شادی را دنبال کنی نه اون گرفتار ناراحتی و معما شوی. من به این موضوع رسیدگی می کنم و نمیگذارم این صحنه دیگر تکرار شود. سلطان فورا نخوزفزی را احضار کرد و اونطور که شاهزاده برای او تعریف کرده بود برای نخوزفزی بازگو کرد و دستور داد فورا پسرت را احضار کن نخوزفزی بدون درنگ نزد پسر خود رفت و گفت شاهزاده با سلطان چنین مطالبی را گفته آیا در این دو شب عروسی چنین وقایای رخ داده پسر نخستوزیل گفت آنچه که شاهزاده گفته عیل واقعیت است و من دیدم که چهار بار بسترمان جا بهجا شد و بعد من به خارج اتاق خواب برده شدم کوچیدم به داخل اتاق برگردم ممکن نشد تا آنکه صبح توانستم خود را داخل بستر و در کنار شاهزاده ببینم پسر ادامه داد ای پدر من با این وقت قادر به ایدامه زندگی زناشویی با شاهزاده نیستم و تقاضا دارم حتی زودتر به آگاهی سلطان برسانید و از حضورشان اجازه بگیرید که زناشویی را برهم زنند با وجودی که نخست وزیر آدم جا بود و مایل بود که پیوند خیشاوندی با سلطان را حفظ کند وقتی دید پسرش تصمیم به جدایی دارد مسلحت ندید از پسرش بخواهد چند روز دیگر صبر کند به نظرش رسید آنچه را پسرش برای او بیان کرده است به اطلاع سلطان برساند و موضوع به همزادر را با او مطرح کند و بگوید که دلیلی ندارد شاهزاده خانم این چنین ناراحتی را تحمل کند سلطان که قبلا آمادگی داشت به محض شنیدن سخنان نخست وزیر فرمان داد که جشن و سرور همگانی را در قصر و سراسر سر شهر همان ساعت پایان دهند و به همه اصطان ها و نقاط کشور هم دستور جشن عمومی را لغو سازند این دستور ناگهانی سلطان سبب بروز شایعات و تبدیراتی گردید ولی فقط علایدین می‌دانست که چرا چنین فرمانی از سوی سلطان صادر گردیده است و علایدین موجود گردید که بین شاهزاده خانم و پسر نخص وزیر همخوابی هم واقع نگردد سلطان ملکه به هیچ وجه به فکرشا نمی رسید که ممکن است باعث این همه دردسر و حادثه غیرعادی علاءالدین باشد با وجود این رخدادها علاءالدین مادر خود را به حضور سلطان فرستاد تا یادآوری کند که علاءالدین منتظر است و مدت سه ماه سپری شده است و وقت آن است که با بدرال بدور ازدواج کند مادر علاءالدین روز بعد به دربار سلطان رفت و کنار در اتاق سلطان ایستاد نخست وزیر که گزارش روزانه کارها را آغاز کرد سلطان مادر علایدین را دید و یادش آمد که این همان است که جواهرات را چندی پیش برای او آورده است سلطان از نخست وزیر خواست آن زن را به حضور آورد مادر علایدین داخل شد و زمین را بوسید سلطان اجازه داد برخی زد. آنگاه پرسید چه تقاضایی داری؟ مادر علایدین پاسخ داد سه پیش برای خواستگاری شاهزاده خانم خدمت رسیدم امر فرمودید سه ماه دیگر بیا و اینک آمدم زیرا مدت سه ماه سپری شده است سلطان که وضع موجود را ناجور میدید خصوص که فکر می کرد ظاهر فقیرانه مادر علایدین برای شاهزاده چنگی به دل می‌زند فرو رفت و با وضع به مشورت پرداخت نخواست به‌صریحا به سلطان عرض کرد که هیچ فراصبی از هی جهت بین شاهزاده و علاءالدین وجود ندارد که آنها زن و شوهر شوند و این اختلاف به قضیه است که اگر سلطان تقاضای علاءالدین را پاسخ منفی دهد علاءالدین به خود حق نخواهد داد از آن اظهار ندی کند سلطان باید آنچنان ارزش بالایی برای شاهزاده خانم اعلام فرمایند که علاءالدین قادر به فراهم کردن آن نباشد سلطان پیشنهاد تخلفوزی را پسندید و به مادر علایدین گفت ای مادر پادشاهان به قول خود وفا دارند در مورد علایدین من حرفی ندارم که با دختر من ازدواج کند اما لازم است پسر شما مالی ارزنده به شاهزاده خانم تقدیم کند و همین که علایدین چهل تشت تلای سنگین که از تلای ناب باشد و درون آن انباشته از همان جواهراتی که قبلا هدیه داده بودی شده باشد از چهل کنیز زیبای سیاه و شهیل كنیز زیبای سفید پوست با لباسهای گرانبها برای شاهزاد خانم هدیه کند من حاضرم دخترم را به همسری او در درآورم بنابراین پیام مرا به علاعادین برسان و جواب آن را هم برای من بیاور مادر علایادین با بوسیدن زمین از حضور سلطان مرخص شد و در طول راه به حماقت پسر خود میخندید و از خود میپرسید چگونه امکان دارد همان جواهرات گرانبها را علایالدین دوباره تهیه کند؟ وان تعداد برده سیاه و سفید را با چه ثروتی میتوان تدارک دید؟ با اینگونه گونه افکار مادر علایالدین به خانه آمد و به سر خود گفت: فکر ازدواج با دختر سلطان را اسرت خارج کن. سلطان با مهربانی مرا پذیرفت و به سخنان من گوش کرد. ولی زیرگوشی با گفته گویی کرد و بعد از آن چنین پیغامی برای تو فرستاد: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 همانطور که اطاعت می